جلسه هفته همه رسول استاد برموده و, و مخبار دوی امثال داره بیتره به سواب و نقام به حد تواثر یه یکی ای دوتا نیست به حد تواثر حالا نه تواثر لفظی بلکه تواثر معنوی داره حالا نکته که در این میت مونده اینه که چرا روایات رو شاهد بر برمزم گرفت چرا دلیل و مطلب نمیدون چهار تا وز بلاش هست چرا روایات شاهد و مطلب نه اینکه دلیل باشه این نسبت به این قسمتی که ما یه شدو به نقبار و چرا شاهد میگیره دلیل نمیگیره به فاطر اموری امر اول امر اولیه که مصمده بایده که کتاب و سنت اون ماه یک دلیل در مسائل عبدی نمیتونه وارد بشه یه در مساید عبدی مجالی برای کتاب و سنت در روایات نمیتوند مسائل عقلی رو هندش کن در مسائل عقلی فاکر باید عبد روش اگه ما روایات وارد کنیم اون روایات شاهد نهایتش حالا با قرطه ندردنی که حکم, حکم عبد چیه حکم از اینکام عبد نظریه یا از اینکام عملیه یا از و بلایه و مجموع و سنده به اینکه ما یک داریم که در بین مقرآن که در بین فلاسفه چه عقل عملی چه عقل نزیه همشون یک عقل مدرکاتش فرمو کنه و کتاب و سنت در عقلیات و جهت در مسایل عقلی عقلی خب اول حاکمه دیگه مثل که در مصایل شرعی شرح حاکمه نه از قلوم ایته خودشه هر در ایته خودشه یعنی همون طوری که تا بسنده در ایته اقلی یا تصرف نداره اقل هم در ایته شرعی یا تصرف نداره قاعده به که این ها ایته هایشون ما نبیدیم در مصایل محض اقلی قاعد بشیم به داریم از مسئله عقلی نبوده، مسئله کلامی بوده. به در از فارم باید روایت‌ها رو بیان بازسازی کنه. باز فایل اولی کتاب سنت نمی‌خوان. حالا وجهشه ما نمی‌خوایم قبول بکنیم این حرف رو. ولی وجهی که چرا شاهد می‌گیره، بله. مسئله عقلیه. اوه. کتاب و سنته دیگه. کتاب و ولی ولو متعرض مسئله عقلی شده باشه ولی کتاب و <تصفح> کتاب و سنت در حیطه شرعیات دخالت میکنه نه در حیطه عرضی یاد که در حیطه عقلیات ما نیازه به علم منطقی داریم در کتاب و سنت نهایت علمی که حاصل میشه علم علفی و عادی و اطمینان، بنابراین حال علمی که در اقلیات باید حاصل بشه در کتاب سنت حاصل نمیشه ما در کتاب و سنت با ظهورات داریم باید در اقلیات کاریم به ظهورات نداریم با قیاسش اگر سر وقت سروبایی بنابراین با این تقریب در اقلیات کتاب و سنت راه بله؟ <تصفح> <تصفح> عرض همشون در یک طرف چه بناهی اقلا چه سیده شون, چه ارتکازشون چه حکمشون بر چه عقل نظری چه عقل امرین یک آس هست ابدان این آقا مطلب نیست؟ اون بگید پایین ما یک عقل داریم ولی اون عقل که بین اقلاست ولی اون عقلی که بناهشون ارتگازاتشون برشن ما دو تا عقل نداریم وقتی میگه عرض... عقل یعنی همون عقل اغلا... هم بگی یعنی همون عقلشون بله موضوع خودشه اون که برسی بگیه ما چی میخوایم بگیم ما میخوایم بگیم چرا این زباییات رو شاهد میگیره نداریم دلیدش اینه که یعنی وجهش اینه که عقلیات نیاز به علم منطقی داره کتاب و سنت نهایت چیزی که برای ما بیاره علم اولی، اطمینان، و اخصال اینها علم منطقی ازشون حاصل نمیشه به خاطر که تمام علمی که از کتاب سنت حاصل میشه ما به زواهره زواهرم مفید یقین یعنی منطقی نیست بنابایی چرا نمیکنی، چرا کتاب سنت تن جن نه، برای انتخاب چرا به کتاب السنه عنوان دلیل، حتی به عنوان دلیل. حتی به عنوان دلیل کتاب السنه تن نابعه ولی زنمش میگم معتبره. بنای و غلام زن نماته نه اون ببین نقضه بر شیخ که چرا اینطوری کلی اومدی گفته باید بین عقل نظری و سایر عقل ها فرق میذاشت نذاشته اون اشتاله بر شیخ کاری به اونجهاتش نداره بین عقل نظری با سایر عقل ها فرقه یعنی عقل و غلام و عقل عملی فرقه چون یعنی رفت همشون یکیه یه ما اینکه هم یکی میدونه مزفرن گفته شارع رئیس و و در همین ها حاکم عقله بدوم عقل همون عقله نزده اینا یکی میدونن حالا خلط در نگاراتشونه لذا اگر روایات متواتری برخلاف حکم عقلی بیاد اون اخبار متواتره باید بشه اخبار متواتر تعریق یعنی محکم و عقل. و این منافات داره با مطالبی که بعداً خود مصنف در وسائل میشه که احکام عقلی تعلیقیه اونها رو باید طور دیگه معنام کنیم نه اینکه روایات متواصله رو بیان تعبیل ببریم حالا الان کلاب چرا شاهده آورده و خواهده این اولی برسشی اینه در ابریات که به سنت تصرف نداره نمیتونه مسئله عقلی رو کنه مسئله کشه کلامی دوم ولی شیفه اومینه که فرق از بین ما با مدلول روایات، یعنی عدم اقاب شخص غیر مصادف به خاطر وجود مانع شخص غیر مصادف ما اقاب نمی کنیم به خاطر این درش هست که همون عدم مصادفت به واقعه که به اختیار ما هم بر نمی از عدم اقاب شخص غیر مصادف به واقع، این به خاطر وجود ولی بلی اقضیت ثواب اهد دو نفر ابدا کرده سنتی که یکی خوب یکی بر ثواب یکی بیشتر میشه کمتر میشه تمام اینها به خاطر وجود مختزی و عدم وجود مختزیه بنابراین ما با مورد روایات فرق مانع نفی عدم اقاب غیر مصادف به خاطر وجود مانع، مانه که همون عدم مصادف هست که مصادف نبوده اقاب ندا ولی اقلیت و اکثریت سواب برگشتش به اینه که مختزی برای زیاده نیست اون شخصی که سوابی هم بهش میدن برای مختزی زیادی نبوده براش از نمیشه محل بحث رو مقایسه کنیم به مورد روایات شخصه که مسجدی میسازه به این کمتری میدن کسی دیگه مسجدی میسازه ثباب بیشتری میبره اونها یعنی اون اقبلیتش به خاطر عدم مختصی زیاده است نه یکی مانهی بوده نه مانهی نیست یکی مختلفی زیاده رو داره یکی مختلفی زیاده رو نداره پس محل بحث رو به موردل باید نباید خواهد کنه برچه سمپون اینه که ظاهر اخبار بیان مقدار ثواب و عبابه نه بیان مایتر تبان علیه یعنی دوایاتی گفته بعضی ثواب بیشتری میبرن برچه ثواب کمتری میبرن این نبخواست اینکه که ما سواب غاب رو منوت کردیم بر یک عمل غیر اختیاری یعنی کستد و و قلت عامل نیباهی این, این و قلت اتفاقا منوط به یک عمر اختیاری اونطوری تفسیر نکنیم که عامل و قلط عامل منوت به یک عمل غیر اختیاری به فاطیمی کستد و قلت آمل در اختیار من نبوده من این مسید رو ساختم از منوط شده سوابق و به یک عمل غیر اختیاری در این بیان سوم و چه سوم می بگیم که اینطوری نیست که و قلت اتفاقا منوط به یک عمل اختیاری و اون قصد مختره شخص مختره سنت چه سیعه باشه چه هسته نباشه قصد چی بوده؟ تمام اینها برگشتش به قصد شخص بس میشه اینطوری معامل کنیم. نگیم حسد و غلط منطوبه یک غیر اختیاری و هیچ ارتباطی به شخص اون مختره نداشته آنه دیگه اگه قصدش اینطور نبود اینطوری نمیشد. میشه منوط کنیم به قصدش. قصدش هم که اختیاریه نه قصدش دیگه. قصد دالا نهاند من شما به اخلاق چیزی دیگه. قصدش این بوده. مسجد بزرگی ساخته که بیان درش نماز این یعنی برمیگرده باز به قصد لا احتمالش هست ما بیگه متعینه بلی احتمالش از این زباب و اقام حزتش و قلندتش برگرده به یک امر اختیاری که قصد خودش هست باشه نه اینکه به یک امر غیر اختیاری برگرده بگید در اختیار خودش نبوده. احتمالش هست احتمالی درده باید وچه چهارون اینه که چرا این روایات نمیتونه شاهد بر محل بحث باشه؟ به خاطر این که این روایات حکومت بر محل بحث داره در خلافون حرف اولی که میگه در عقلیات کتاب و سنت رو چیت نداره در برعکس به خاطر حکومتشه؟ یعنی اصل اولی کتاب و سنته. اصل اولی کتاب و سنته. از دوم احکام عقل به حاضرین که احکام عقل یک احکام تعلیقی احکام کتاب سنت یک احکام تنجیزیه. و این همدیگه با هم تضاد دارن ما نمیتونیم دلیل بگیریم چون متنشون دو تا است اخذای قاعده که ما نظر به روایات بکنیم بعد روایات چی گفته اگر کسی سنت حسنه یا سیعی رو بخواد ابداعش کنه کسط عامل و قلت عامل تأثیر داره در کسط سوا و قلت سوا این یک اصل کتاب سنته بعد حالا ما از نظر عقلی اومدیم به این نتیجه رسیدیم که چطور میشه ما اینو معروض کنیم به یک عمر غیر اختیاری بنابراین حکم عقلی به خاطر اینکه تعلیقیه باید تعویل بشه نه کتاب سنت توجیه بشه ما نمیتونیم کتاب سندت رو توجیه کنیم به خاطر باقتهای ذهنی خودمون مثل خیلی از موارد مثل ادبیات عرب رو اصل میگیریم بعد میام آیات قرآن رو توجیه میکنیم این نهازان لساهران برخلاف قواعد عربیه و احتمالم نمیدیم که ادبیات شاید قلطه چرا قرآن اشتباه کرده باشه یا توجیه کنیم یا تسامح درش باشه یا فراعتش شازی درش باشه اصلش قرآن ادبیات رفت غلط میگه در این موارد این نهازان لساهران و وجودی براش هست این که یعنی نهایت قصاحت این نهازان لساهران در مقام بیان دوتا مطلبه نه اون مطلبی که در ادبیات تصور میشه و ما میگه پس این در لساهران باید بگه یعنی هر کتاب و سنته قاصدهای ذ تعلیقیه احکام امر تعلیقیه اونو باید تعلیقش ببریم نه اینکه کتاب و سنت در ضمن توضیحش کنیم به که از نظر عقلی ما این نتیجه رو گرفتیم که عقاب نمیتونه متناسب با یک امر غیر اختیاری باشه یا باید برگرده به یک امر اختیاری ولو با هزار واسطه یا اینکه برنامه گیرنده ما کتاب و سنت رو توضیح می‌کنیم چرا نباشه کتاب سنت حاکم بر احکام لذا احکام عقلی تعویل میده و این رو بعداً مصنف در رفت نظریه یه سرابادی میگه که احکام بسیع اقل اگر مخالف با کتاب سنت باشه یا ترد میشه یا تعویل میده نه اون،, اون طوری نیست اون طوری نیست یعنی ما از از کتاب سنت دیگه یعنی نه یقینا خلافش نمیگیره نمیگیره نه ما ببیم قائل به این که نه خیلی کتاب و سنت را قبول نداره ما باید مباعث عملی رو مطرح کنیم از عقل به توحید برسیم اون هم مال منکری نیشه اون ها از محل بحث ما خارجه علمه ما وصول همه کتاب سنت رو قبول دارن منکر کتاب سنت که نیستن یا این بگیم عقلی هم لدم بحث این که مثلا اسفار رو بعد از چی میخونن اونو میخونن برش پس کتاب سنت ما پیش قب اون رده بر این مطلب نمیشه ولی میگم مقتضای قائدیه که احکام عقلی تعلیقیه یعنی معلق بر اینکه شارین امضا بکنه یا شار امضا نکنه خب این دلیل عقلی میخواد در حال اینکه دیگه اگه اون طور باشی علمی حاصل نمیشه خب اگه فقط علمی حاصل نمیشه گفتی که باز تعارض هست نه این علمی نباید حاصل بشه دیگه اوکی. بعد خود نه بعد می‌گرده آخرش به یک علم منطقی علم منطقی حاصل میشه در اون جهازش فردی نداریم حالا در اینه که در این وضعه چهارون میخوان بگن که روایات اصله روایات چی میگه بعدا این من خوص نگو چی میخواد بگه یقینا بر خلافش نمیگه به خاطر هم... این مذبتشون فرم اون در یه واضع دیگه, دیگه است ما بر یک حکم تعلیقی باید معید دلیلی که میاریم اونم تعلیم تعلیق اثبات کنه اون خودش احکام تنجیزی یعنی نهایت هر طور کتاب سنت میزنه احکامش تنجیزی ما حکم تنجیزی رو نمیتونیم دلیل برای یک حکم تعلیقی بدونیم لذا میشه شاهد یعنی دلیل نیست مسطحشون دوتون. شاهد بودن درش ضعفش نیست اولی عکسی. اولی برعکس میگن از عن کتاب سنت هستند حالا کل ها اینا بعضی ها کسی قبول بکنه خیلی تو این چیزا من مانور نمیدم چرا یشهد و به اخبار گفته چهار تا براش هست ما اینو میخوام بگیم چیزی نمیخوام اسکات کنیم نه در عقلیات نه در شرعیات که چرا یشهد میگه علتش اینه متن قبل از متن قبلی مونده ما رو قاموا یعیدوا ظالم ان ننجو من انفسنا الا بالفر في میگه ما خودمونم در وجدان خودمون درس میکنیم که اگر شخصی قصد به حرمت پیدا کنه مصادف باشه مذمتش بیشتر از کسی که قصد به حرمت پیدا کنه و مصادف با واقع در نیم قصه وجدانیه. اینو چرا ما اگر گرفته به خاطر که وجدان از موارد احکام عقل نظریه و مهند بحث ما از موارد احکام هم دعملیه ما در حسن و داریم بحث میکنیم نه رشدانیان رشدانیان جوز حسیات باطنیه بنابراین جزء قضایه ضروریه س که در منطق دیدید که اون قضایه ضروریه ست از موارد احکام عقل نزنی و یقینش یقین منطقی یقینش ذاتیه نه اعتباری ولی محل برسما اعتباریه حسن و قبعه عقلی خود حسن، خود قبعه همین های اعتباری ها. در اعتباریات داریم برسن کنیم داری. این لذا این هم میشه میشه مبناش اینه وقت خودشم خود مصندق میدونه که اینا فرق دارن خود مصنف هم میدونه ولی خب شفافیت در تعبی نداره. خیلی اینجا خود مظفر مگه نمیدونه مظفر شاگرد معصطه اصفهانیه خودش هم فیلسوفه مگه نمیدونه عقل نظری با عقل عملی فرق داره پس چرا میگه یکیه چرا میگه شارسیل اوغلاس و اغلا با عقلشون رو حکم میکنن اگه فیلسوف نیست، یه فلسفه مزفر یقینا از فلسفه شیخ انصاری با اینکه یقین داریم شیخ انصاری فلسفه نبونه. این تعبیرات بعضی از نواد قاسره دیگه نباید اونطور بگن شعره سید اغلاست این حرفا نیست شعره به اغلا نداره که ما اینکه اغلا کارشون رفتی به حیطه نداره نمیدونه بگیم شار سید اغلاست بنابراین اغلا هرچی بگن شعره هم همون امزامی کن تا تعبیرات زیادی در مزفر مصول مزفر دید مطلب بعدی اینه که ان نجد من عنفسنا الفرد في مرتبه الذم بین مساد فقط او الواقع و بین من لم يصادق او الواقع الا ان يغاض که این امر وجزانی رو ما به انکارش بکنیم بگیم این که شخصی رو برای مصادفتش بیشتر ما مذمت میکنیم، این مربوط به عقلاست ما بحثمون در مورد شاره شخص آستی و اغلا هستند که ناراحت میشن و میخوان تغاز کنن نمیدونم تشفی میخوان لذابیشتر مزمتش میکنن شعره تشفی نداره احتیاجی به این چیزا نداره هیچ نقصی نداره دردی به احساس نمیکنه. از عذیتی براش نداره نقصانی براش آرز نمیشه اگه من قرد پیدا کنم این خمره و این رو اقدام کنم بخورم آب در بیاد یا خم در بیاد تأثیری در حال شعره نداره بنابراین تشرفی معنا نداره لذا بین منکرات و قلعهیه و منکرات شرعه باید قاعده فرق بشین الا که این تأیید شما به درد منکرات و میخوره و محل به بحث ما منکرات شرعه و شاره این حالت تشفی رو نداره که بیاد کسرت مزمت رو اونم مثل ماها داشته باشه بیاد بگه شخصی که مصادم با واقع شده قطعش اون باید بیشتر مزمت بشه اونه که نشده کمتر مزمت بشه این مال اوغلاس مال شاره نیست خب چند هم از همین مورد چون برای خود ما ضرر داره اولی مطرحه باز می کنه که خام خورده معلوم زندش میکonan از اون برن واسه قابل بحثی چنده ایمان خودش تازه حالا اونم جوابه، اونم جواب شیخ سیفسی میخواد که یه اثر دیگه از اونها جواب در جواب شیخ انصاری میشه خیلی از مطالب دیگه یکی اینکه بگیم نه هیچ فرقی بین اینها نیست چه فرقی داره خدا خودش احیاج به تشرفی نداره ولی قضایه شهریه با قضایه اقلاجی فرقی نداره اقلال ها میخوان مزمت برن. هم در حیطه شهر هم در اینجا اقلال اون از جوابه الا ان یقال ان نزال یعنی <تص> فرق بین این دوتا در مراتب زند این نما به به مبغوظات اقلالیه چرا؟ به خاطی اقلال وقتی تجربی بر علیه اینها بشه یه نقصانی دارن. یه عذیتی هست یه احساس خللی می کنن لیدان می خواهد بکنن نیاز به تشفیه دارن ولی شعره این طور نیست من حیث این نزیادت از من المولا و تأکد زم من الحقلا به نسبت الام و منصاد و اعتقاده للواقع انما لعجل تشفیه که این تشفیه المستحیفی حق الحکیمت متعالی و تعمل و تعمل که همین جوابی که شداد و دیگران گفتن خیلی اهمیت نداره از این حیث اهمیت نداره که ما بیانم بگیم اینا چون بحث در مزمته اصلا بحث از قبه عقلی هم خالش شد بحث در مزمته که اقلال جیو مزمت می میکنه جیو مزمت نمی کنند. این میار نمیتونه باشه یعنی میار اصولی برا ماها نمی تونه باشه یعنی نهایتی که مزمت. مزمت هیچ اختزایی درش نیست به خلاف قوم که مقتضی تحریم و استحقاق قاب هست مذمت مقتضی چیزی نیست حالا میخوام بیشتر مذمت بکنن میخوام بیشتر مذمت نکنن نه اهمیت نداریم حاضر یه مطلب دیگه که هست برای شفافیت لازمه بدونیم اینه که ما دو چیز داریم در باب تجربی یکی اون حالت تجربی شخصه یکی اون فعل متجربه اون حالت نفسانی تجربی و تمرد اون یقینا نه تنها تجربیه خودش ایسیانه به فرمایشات علامه تبا اینطور که تو زهنمه در به سالت و مراجعه کنید این با مرزیتش فرحه ندود تمرد تمرد دربی نفسانی خودش مرزیته اینا دنگ و قبه ها و اصول نیدین در این بحث ندارن سفت نفسانی خویسه و مسطحق قبه و زم و اقاب و همین ها هست پس یک سفت نفسانی تجری و تمرد داریم یک فعل متجربه داریم اون سفت نفسانی یقینا قبیه این فعل متجربه خارجی یعنی این آب خوردن که من خیال میکردم خمره این یقین هم گفت نداره پس علما ها برای چی دارن بحث میکنن؟ یه چیزی که دو دو تاست برای چی این همه سرگله هم میزنن؟ چه متکلمین، چه ازولین، چه فقها، چه فلاسفین؟ برای چی دارن بحث میکنن؟ این نمرکلان در یک نکته است و الا صفت نفسانی قبیه بلا اشکال و بلا خلام. اون فعل متجربه خارجی که آب خوردن باشه و امثال اون اون یقینا قبهی نداره بلا اشکال و بلا خلا تمام دحسا در این موارد حول یک مهونه و اون اینکه آیا قبه نفسانی از اون حالت تجربی یعنی قبه خود تجربی سرایت میکنه به اون فعل یا سرایت میکنه تمام برسا رو اینه آیا از این تجبری تمرد باطنی من قبهش سرایت میکنه با این یکی یا قبهش سرایت نمیکنه تمام وقتا حول همین محوره حالا فلاسفه متکلمین و اصول این جواب بدن؟ هر جواب هم داده بشه معیار میخواد مبنا میخواد یعنی دلیل میخواد دلیلش چی؟ آیا این سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه یه نکاتی هست برای فهم بیشتر با این یاد کنم مراجعه کنم که آیا یعنی بحث عمدهش اینه باید خب بینم که سرگیه میخواد بست بکنم که این تصریح هست دار با خود اینکه معمولاتون که اوزیت اینه که این بحث بحث ده ده. خیلی نداره چون در امارات هم از در حصول عملی هم از حصولیتش ذاتی نیست بله اتفاق رفتی به اون نداره ندارد علاقالله قبعه هم آیا به این فعل خارجی به این آب خوردن می یا نمیرسه؟ تمام بحثا رو اینه لذا اونمانی که مطرح میشه و نیاز به تحقیق داره نظر شماها رو میخواد در کلمات مطرح نشده اینه که آیا انوان تجربی از عناوین ثانویه حساب میشه یا از عناوین ثانویه حساب میشه مثلا زرر از عناوین سانویه اثر هر از عناوین سالمیه است اضطرار از عناوین سالمیه آیا تجربی از عناوین سالمیه هست اون فعل خارجی و متعنن به عنوان حکم بکنه یا نیست بحث در این از عناوین سالمیه حساب میشه یا حساب نمیشه از این اجرا انطباق انوان تجربی در فعل خارجی متجربه آیا موجه به میشه یا نمیشه عنوان تجربی از اون از اون صفت نفسانی بیاد به فیز خارج و اینو باید جواب بدیم آیا سرایت میکنه یا سرایت نمینه تمام جواب در یک جمله است یعنی یک معنای اساسی اختلافی و این اختلافش حتی در افکارم حل نشده با اینکه در اصفار مالی بوده این رو در باب اقاب اخروی و تجسم اعمال چون یک بحث مزره اینکه که آیا انسان وقتی گناه میکنه مستحق اقاب میشه و اقابش میکنن خودش داخل جهنم میشه یا این میشه رو داخل جهنم <تصفيق> یعنی ادخال و او دخول و فننار خودو میشه یه بحث اینطوری مصدر کرده در اون بحث خود ملاصد را شبیه این بحث مطرح کرده پاچی سرزباری در تعلیقه از کار داره در منظومه داره و اونایم که بحث های اعمال رو بحث کردن دارن و حتی اونایی که بحث میکنند از حقیقت ملازمه بین محصیت و بین اقابش که حقیقت این تلازم چیه؟ آیا بین فعل معصیت با احقاق ملازمه اعتباری هست یا تکمینیه مثل این که من دستم رو بکنم تو آتیش بگم آیا این موجب استحقاق میشه دست من میسوزونه یا نمیسوزونه بحث اینطوریه یعنی بحث های تکمینیه یا اعتباریه در اون محثا همه مصرح کردن که آیا قبر رو از تجربی نفسانی به فعل خارجی میتونیم بکشیم یا نمیتونیم بکشیم و عمدهترین ترین مبناهینه که محل اختلاف بین همه اعلام از فلاسفه و متکلمین و اصولگی اینه که میگن مصد به احکام آیا خصوص ماهیات یا ام از ماهیات بهنامی یعنی آیا فهد میتونه قبیه باشه یا عنوانم میتونه قبیه باشه رئیس فهدش قبیه یا ریاست قبیه و نظر عمده اعدام اینه که مذهب احکام عقلیه ماهیات و افعال هم نه اناوی. بنابراین ما نمیتونیم قائل به سرایت بشیم سرایت قبع تجری و تمرد به پیل خارجی و تمام بحثان این سرایت هست. و اونهایی که دقیقتر بحث میکنن مثل علاقی آشتیانی در مقدمه شرح قیسری که دوازده تا مقدمه فلسفی ارفانی برش داده از سابق یادم میگیشون خیلی دقیق بحث کرده و اینکه ما یک قبعی رو در عنوان نمیتونه متدرک کنه بیا نگیم آقا او به من منطبق بشه برای این پیدا خارجی این انطباق معنا نداره انطباق معنا نداره چرا به خاطر است اتفاق همه علما او یا ذاتیه یا اقتضایی یا اعتباریه انتباقی نداره او یا ذاتی باید باشه مثل زون اما تفسیر یا باید اقتضایی باشه مثل کس یا باید اعتباری باشه مثل زر و امسالی یا اعتبار کنم برش ما قبه انتباقی نداریم قبه سرایتی نداریم برگشتش هم به اینه که احکام عقلیه مصد نمیتونه عناوین باشه ریاست نمیتونه قبیه باشه فعل رئیس که قبیهه فعل انسان که قبیهه بنابراین ما عنوان تجربی رو از یک سفت نفسانی نمیتونیم سرایت بدیم به فعل خارجی خیلی راحت نفعی قوخ میشه از این فعل متجربه خارجی و مسئله داره یعنی از اسفار گرفته تا که تابهای اصولی خودمون مرتبطه به مسئله اصل اقام فعلیت اقام تجسم اعمال ماهیت اقام تلازم بین فعل و اقام و فعل و سواه در مسائل استحباقش همه این مرتبط به همین باب ازا باب تجربی رو ما خیال نکنم خیلی آسونه و خالفت با ما قبل پیدا کردیم به خبر و خوردیم و آب در اومد به این راحتیانی هم مسئله کلامی شدید هم مسئله مرتبط به فروعات کسیده فقیه. و خواهد این یه اثر برش مترم از دو حیث خیلی اعتبار داره بلو از حیث اصولی نازل باشه از حیث کلامی معتنابه از حیث فقیه معتنابه حالا این تلازم آماین که تحقیق بکنن در ادامه و قضیت هرومه بعض بعض الماسه این صاحب فصول در کتاب از فصول القرمیه برادر صاحب هدایت المستشدی هاشیه امیغه برمعاله اونقدر امیغه اونقدر علمیه و اونقدر فرمیه کتاب نظر من تا امروز هم کسی رو درست نداره قضا معروف شده به صاحب حاشیه یعنی معالم با این که 200 داره این هاشیه محلیفش مرون به صاحب هاشیه هدایت مسترشدی هدایت المسترشدین که برادر بزرگتر باشه فیصل اصولی خیلی فنی داره هر پاش همه سنجیده و خوب هر کجا هر میزده به آقا مدید برخلاف صاحب فسول صاحب فسول خیلی به توهمات به تصورات، به خیالات پردارسته نباحث اصولی رو کشنده به طرف فلسفه و این کفایمتی مقدار عقلی شده به خاطر متأثر 90 درصد از اصوله کفایه به این نفتر اومده حالا این صاحب فصول بعضی موقعش ها نظر میکنه حالا چرا فصول به در نمیخوره به خاطر در وقت قوانین خیال کرده دوانین ناپخته است اومده پختش کنه خرابش. کرده هر اصولی مقابله کنه با قوانین ساخت میشه یعنی مطالبش یقینا خیرفنی میشه قوانی مطالبش خیلی پخته و تنمیه پیشون رو بزین آگرستش کنه اعتجا سر از یه نظریاتی در آنگونده و شیخ همسایی هم نوع نظریات رو قبول نمیم به خلاف آخوند که قبول میکنه بعد این تأثیر در فتاقاشون هم داره در فتاقاشون هم تأثیر گذاشته. حالا میخواد بگم که ایشون بعضی از موارد اظهار نظر میکنه اظهار نظرش در این مسئله اینی که اومده گفت آقا در موارد تجربی قائل به کس را انکسار میشه به کس انکسار به این معنا که ما قبه ذاتی و حسن ذاتی نداریم یا اقتضاییه یا اعتباریه یعنی به وجوه و اعتبارات فهم اگر ما تجری کردیم حرامی رو مرتکب شدیم مكروهی رو مرتکب شدیم مستحبی رو مرتکب شدیم یا واجب تعبدی رو مرتکب شدیم در مقابل مواردی که تجری کردیم و واجب توسلی رو مرتکب شدیم در اون چهار قسم اولی حرمت داری قبیه در این رسم پنجم قبه یعنی من به خیال اینکه این یک حرامه و تجربی کردم و خواستم انجام بدم انجام دادم و سر از یک واجب توسلی درآورد. در این موارد کس و انکسار میشه قبه تجری با اون مسلحت اون واجب توسلی با همدیگه مقایسه میشه در صورت تصاوی و کسرت مسلحت واقعیه قبح تجربی میپره به الا در سایل موارد هرچی شما تصور کنید تجربی بر قبحش باقیه و این مبتنی بر اینه که محنای توسطی رو آقایم بدونن توسطی به چهار معناست. توسطی به چهار معناست این یکی از معانش نظره و محل بحثی اینه که توسطی یعنی واجبی که قصد قربت نمید هر واجبی قصد قربت نخواد میشه واجب توسط مثل شستن لباس برا نماز مثل دفن مقید مثل خیلی از واجبات نظامیه که در جامعه هست اینا قصد قربت نمیخواد مثل بحث کردن قصد قربت نمیخواد تلقه باید بحث کنه بحث نکنه چیزی یاد نمیگیره واجب تحب کدی نیز فقط به خاطر خدا بحث کن. و نداره حتی حتا شهیدثانی داره که ولو برای غیر خدا هم باشه اقدام کنه، بعدن درست میشه. یعنی ولو انسان درس خوندنش، در حوزه برای غیر خدا همون رو گفته ادامه بده. و در درس رو همون برا غیر خدا بخونه، که بعدن عوض بشه و ایشون میگه جزام دارم که عوض میشه. یعنی بعضی از واجبات توسلیه، قصد قربت نمیخواد، مثل نماز نیست، مثل روزه نیست، مثل دادن خمس نیست، مثل دادن صدقه نیست. اینا رو قصد و غربت میخوان ولی قصد و قربت نمیخواد و من خیال کردم که این فل حرامه تجری کردم این شخص به خیال من که تا فل و دفنه اومدن تجری کردم و دفن کردم بعدن این کشاف اگه این مومن بود از واجب توسلی انجام دادم در این موارد قائل شده به اینکه که تجربی نداره در سایر موارد خوب داره و منوشه این نظریه کست و انکساره یعنی زد میشه مثل خوب در بین قوم تجربی و بین مثل همه که انجام داریم یا مبصدهی داره این ها به کست و انکسار باید شده و این هم از نظریاته و مبتنی بر این که این توسلی به این معنا رو آقایم قبول کنم که کفایت میکنه و شیخ میگی میگه نیست واجب توسلی و واجب تعبدی، علو ببین قصد قربت اینا نمیخواد، اینها قصد اون امر رو میخواد. ولیو قصد قربت نخواد اگه قبول نکرده که یک واجب توسلی اتفاق افتاده باشه. و آیا مناقشه مصنف، مناقشه در کبراس یا مناقشه در ثغرا، اینها انشالله فردار سلام. منظور کیه؟ بحث بندر اینه که کیفت به نسبت به چه داره؟ به ارتباطش با این مسئله این ببین یعنی ما اگر ببینیم این اعتباریه یا ببینیم تکوینیه، مطلب اینه که فعالیت تکوینی تجلی اش قابل نادیده گرفتن شدنیه. اما شرط اعتباری ببینیم تجدی گونه، آره، آره، خود تجدی خود جننه. اما اگر داشتن ام تق... تلازم نباید بشه، به که معنا نداره. بحث اعتباری بودن بحث از ها مختصنی بر اعتباری بودن. و البته بر ذاتیت تکوینیاتی علامه در این بحث را نبرد. آه، آه، آه، چطوری؟